بسم الله الرحمن الرحيم بحث استعارة تقسيم استعارة تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتابعية تقسيم الاستعارة أصلية تابعية ابتداء قواعد وصفات أمثلة توضيحها إمداد القواعد قاعدة شارده كتاب تكون الاستعارة أصلية اذا کان اللفظ اللذی جرت فیهی اسما جامدن استعار اصلی می باشد زمانی که لفظی که استعار درش جریان داشته اسم جامد باش خب استعار سر رکن داره مستعار لح که مشبه است. مستعار منه که من مشبهون به هست و مستعار همون است که درش استعار, استعار رخ داده پس استعاره اصلی می باشد زمانی که لفظی که استعار درش رخ داده اسم جامد باشد پانزده تکونو الاستعارتو تبعیتن اذا كان اللفظ اللذی جرت فيه مشتقا او فعلا استعاره با تبعیمی باشد زمانی که لفظی که در جریان داشته مشتق باشه اون لفظ یا فعل باشه شانزده كل تبعیت قرینتها مکمیتون هر طبعی قرینش مکنیه می باشد اینو بعدم در توضیحات امثله خواهد اومد یعنی درکران این که در استعاره استعار تصریحیه هست جائز است که إجراب الشيء وإذا أدريت الإستعارة في واحدة منهما بإن خاطر مجيء وزمانك جاري شوء إستعارة دار يكي أزاندو إني دار إستعارة تسريحية يعني إستعارة مكنية إن هما بار مجرد بإستعارة تسريحية وإستعارة مكنية امتنع إجراؤها في الأخرى ممنون شه اجراش در دیگری بله به یکی از این دوتا که اجراش شد تصریحیه دیگه نمیشه در مکنیه اجراش کرد این در طبعیه هست بله خب بیایم روی امثله قال المتنبی یا صف متنبی در حالی که قلم و وصف میکنه میگه که یموج ولامن فی نهار لسانه و عمن عم قال ما ليس يسمع پرتاب میکند تاریکی ها در روز زبانش یا فعل فیل مزاره هست و فائلش لسان هستو ذلامن هم مفعولش هست میگه یا پرتاب میکنت ذلامن تاریکی را در روز زبانش و عم من قال ما ليس يسمعو و می فهمد اما از کسی که گفته است مالا آنچه را که نمی شنود این وصف قلمه خب در این بیت قلم که مرجع زمیرش در لسانهو این زمیر به قلم برمی گرده شده به انسان تشبیه شده به به انسان ولی مشبهن به که انسان حسد شده یکی از لوازم انسان که لسان باشه ذکر شده پس اینجا استعاره مکنیه هست در این بیت استعارهای دیگه ای وجود داره یا مجو ظلامن پرتاب می کند تاریکی را منظور از ظلام چه هست؟ اینجا ظلام مشبهن به هست مداد که مشبهه حس شده اینجا تشبیه شده مداد که منجوهرست به ظلام به تاریکی چون وجه شبه تاریکی هر دوتا سیاه پس اینجا استعاره ما اللحظه مکنیه و تصریحیه تصریحیه هست چون در مکنیه در تصریحیه مشبه به ذکر میشه در حالی که اینجا مشبهن به ظلام هست ذکر شده و مداد ذکر نشده بس جو ولا من ظلامن استعاره تصریحیه هست از مداد از جوهر نهارين. نهار باز هم استعاره هست چون تشبیح شده ورق به نهار پس مشبهون به که نهار باشه ذکر شده باز هم تصریحی است از نظر مکنی و تصریحی بودنش چون در درس قبلی این تقسیمیاتو خوندیم ولی در اینجا اگر دقت داشته باشیم الفاظی که استعاره هستند جامد هستند لذا به این استعاره میگن اصلی قال برین جلوتر و قاله یو خاطب سیف الدوله متنبی در هایی که سیف الدوله رو مخاطب میکنه میگه "احبک یا شمس الزمان و بغره و الا منی فی و سحا دوست میدارم خرشی زمانه و زمان. بدر زمانه بدر شب چار ده. وإن لامني فيك السهو والفراقد اگرچه که والفراق اگر در رابطه با تو سوها و فراقد مرا ملامت کنند بله اینجا اومده تشبیه کرده سیف الدوله رو یک بار به شمس و یک بار به بدر جامعه در اینجا چی هست وجه شبه جامع رو بالا بودن و ظاهر بودن است و در مصره بعدی افراد دیگر رو اونایی رو که پایین‌تر از سیفالدله حسن یک بار بسوها و بار دیگر به فراقد اینا رو تشبیه کرده با جامعیت کوچک بودن و پنهان بودن چون سوها و فراقید دوتا ستاره خیلی پنهان هست و کوچک پس در این مثال تشبیه شد سیف و دوله به شمس و به بدر و بقیه به سوها و فراقید إنجا باسم إصارة تسريحية هسترا كون مشبهن به كي شمس و بادر باشي صحا و فراقت باشي إنجا وقال المعرّي في الرثاء فتن عشيقته البابلية حقبتا فلم يشفها منه برشف ولا لفن جباني كي عشق فرزيد بأو بابلية شرابی که منسوب به بابل عراق هست مدت زمانی طولانی جوانی که شراب بابلیه یا شراب مدت زمانی عاشقش بود اما نیازش رو این جوان برآورده نکرد نه با خوردنی و نه با بوسیدنی روشمون نوشیدن و لفم مون و بوسیدن در این بیت تشبیه شده بابلیه که همون شراب هست بزنی سپس مشابهان به حاسب شده. و یکی از لوازم رو که یکی از لوازم مشابهان به که همون عشقت رو ذکر شده. لذا اینو میگن استعاره مکلیه. بابلیه اینجا استعاره هست بر سبیل استعاره مکنیه چرا؟ چون مشبهن به اینجا ذکر نشده که زن باشه و مشبه که بابلی هست ذکر شده و یکی از لوازم مشبهن به عشقت هو باشه ذکر شده این سه مثال بحث امروز جدید ما این سه مثال اینه که استعاره اصلی هست چرا چون الفاظ استعاره جامد هستند مشتق نیستند به این نوع استعاره میگن استعاره اصلیه اما بریم در دو سال بعدی و قال تعالی ولما سكت عن موسى غضبوا اخن الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم در این مثال و لما سکت ان موسا او و زمانی که ساکت شد از موسا غذب خب در اینجا تشبیه شده انتهای غذب به سکوت با جامعیت آرامش در سکوت و در انتهای غذب پس تشبیه شده پایان خشمگینی به سکوت سپس لفظی که دلالت بر مشبهن به میکند که همون مشبهن به اینجا سکوت است استعاره شده برای چی؟ برای مشبه که همون انتهای غذاب است سپس مشتق شده از سکوت سکتا ولما سكت عن موسى الغضب تشبیه شده انتهای غضب به سکوت و سکتا مشتق شده از سکوت که مشبه به ماست مشبه انتهای غضبه مشببه به سکوته خب بریم مثال بعدی و قال المتنبی فی وصف الاسدی متنبی در وصف شیر میگه ورد اذا ورد المحیر شاربا ورد الفرات زئیروه والنیلا شیریست ورد چیزی رو میگند که رنگش به سرخی بزنه و شیر از اون جایی که به سرخی میزنه بهش میگند ورد وردن اذا ورد البحيرة شاربا میگه شیریست زمانی که وارد بحیره بشه منظور از بحیره بحیره تبریه هست برای نوشیدن میرسد بفرات صدایش و بنيل در این مثال سوم مثال آخری رسیدن صدای شیر تشبیح شده رسیدن صدای شیر به فرات و به نیل شده به صدای آب به رسیدن صدای آب پس رسیدن صدای شیر تشبیه شده به رسیدن صدای آب سپس لفظی که دلالت بر مشبهون به میکند که همون ورود باشه استعاره شده برای مشبه مشبه در این مثال ما رسیدن صدای شیر هست مشبه به رسیدن صدای آب هست سپس مشتق شده أزورود وردح ورد الفرات زئيره والنيلا بس وردن إذا ورد المحيط شاربا ورد الفؤ فرات زئيره والنيلا إن دتا تشبي تشبيه, تشبيه تصريحيا صن چرا شل الهاز اصلی بودن و تبعیه بودن اگر بررسی کنیم اصلی بودن و تبعی بودن مکنیه بودن و تصریحی بودن رو راها کنیم میشه این دو تا مثال تبعیه چرا؟ چون الفاظی که درشون استعار رخ داده مشتق شدن از مصدر یا قبلا در چی آورده بود؟ قواعد زمانی که اون لفظی که درش استعاره رخ داده باشه فعل باشه یا مشتق باشه استعاره از تونه هست؟ استعاره هست در این دو مثال در این دو مثال که استعاره از نوع طبعیه هست میگه اگر باری دیگر بیم این دو مثال رو بررسی کنیم یه چیز جدیدی هم گیرمون میاد و اون چی است میگه جایز است که تشبیه بشه غذب به انسان جائز است که تشبیه بشه غزب به چی؟ سپس حسب بشه مشبهن به که اون انسان هست و یکی از لوازمش که سکوته بهش اشاره بشه در نتیجه غضب استعاره مکنیه هست و در دومی هم جائز است که زئیر یا همون غرش شیر تشبیه به حیوان بشه، سپس هست بشه و یکی از لوازمش که اولو وراده هست اشاره شده بش در نتیجه در ذئیر وراده در زئیر استعاره مکنیه هست همون چیزی که قبلا گفته بود کلو تبعیتن قرینتوها مکنیتون پس هر استعاره تبعیهی صحیح هست که در قرینش استعاره مکنیه باشه ولی جایز نیست که هم برای استعاره تصریحیه و هم برای استعاره مکنیه اجراش کنیم موقعی که همون اجراش کردیم در تصریحیه تشبیه شده بود انتهای غضب به سکوت بار اول ذکرش کردیم ولما سكت عن موسى الغضبو اینجا در سکته مشتق شده از سکوت استعاره تصریحی هست را چون مشبهون به ذکر شده و همچنین در مثال بعدی اما باری دیگر میشه اومد و روی خود غذاب و روی زئیر قبلا ما روی سکت و اومدیم بررسی کردیم تشبیحو شد تشبیحی استعاره تصریحیه اگر بیانم روی غضب و زئیر غضب و تشبیحی به انسان بشه و انسان اینجا حصفه یکی از لوازمش که سکته زکر شده اون موقع میشه تستعاره تس مکنیه میگه جائزه اما ولی بر یکی که اجرا شد دیگه بر دیگری اجرا نمیشه اون این هست معنی اون حرفش که در قاعده آورده بود وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى <تصفيق>